یاران چو به اتفاق می کنید، خود را به جمال یک شاد کنید، ساغی چو می مقانه برکب گیرد، بیچاره فلان را به دعا یاد کنید. یک روز پلک کار مرا ساز نداد، هرگه سوی من دمی خوش آباز نداد، یک روز دمی زشاد مانی نزدم، کان روز به دست صد من باز نداد. یک نان به دو روز اگر شبد حاصل مرد، و کوز شکسته ای دم آبی سرد محکوم کم از خودی چرا باید بود یا خدمت چون خودی چرا باید کرد تا زهر و مه در آسمان گشت پدید بهتر زمهی لعل کسی هیچ ندید من در عجبم زمهی پروشان کیشان بهزان چه پروشند چه خواهند خرید